الا گستون 15 2008 در ایمیل قبلیت نوشته بودی، بعد از اینکه رمانت را دوبار خواندم و دیدم با شمس این همه شباهت داری در مورد سرگذشت خودت کنجکاف شدم. برایم می نویسی که چطور شد سوفی شدی؟ از صحبت کردن در باره گذشته خیلی خوشم نمی آید الا با این حال برایت تعریف می کنم در روستایی کنار دریا به نام کینلوچبروی در اسکاتلند به دنیا آمدم اسمی که خانواده ام رویم گذاشتند کریگ ریچارپسون بود بارسترین خاطره هایم از دوران کودکی قایق‌های ماهیگیری است و خزه های دریایی که مثل مارهای سبز در میان تورهای ماهیگیری تکان می‌خوردند. پرنده‌هایی که در طول ساحل می‌گشتند و کرم شکار می‌کردند. گل‌های صحرایی که در جاهایی عجیب باز می‌شدند. بوی تند و شور دریا کوهای سرسبز و نیز، سکوتی غیرعادی که بعد از جنگ بر اروپا حاکم شده بود. من میان اینها بزرگ شدم. بعدش غزایای دهه شست پیش آمد و کل اروپا یک دفعه درگیر این طوفان شد. جنبش دانشجویی، تظاهرات، هواپیما انقلابیگری و غیره من ما در گوشه ساکتم بودم دور از همه اینها و بیخبر از موج تغییرات که همسن سن و سالهایم دچارش شده بودند پدرم مغازه کتابهای دست دوم داشت و مادرم مزرعه پرورش گوسفند این شد که فکر کنم در بچگی هم از حالت منزوی چوب پانها و هم از حالت درونگرایانه کتاب چیزهایی گرفتم. بیشتر روزها می رفتم بالای درخت منظره را تماشا می کردم و توی ذهنم طوری برنامه ریزی می کردم که بقیه عمرم را همانجا زندگی کنم. با آنکه بعضی وقتها به سرم میزد ده را ترک کنم و دست به ماجراجویی بزنم اما در کل کیلو چبروی را دوست داشتم. از زندگیم راضی بودم. با خودم می گفتم اینجا به دنیا آمده ام همین هم می میرم. نگو داستانی که خدا برایم نوشته بود طور دیگری بوده. در بیست سالگی به دو چیز برخوردم که کل زندگیم را عوض کرد. اولی دوربین عکاسی حرفه بود. در کلاس عکاسی ثبت نام کردم. نمیدانستم کاری که برای سرگرمی شروع کردهام به حرفه مورد علاقم تبدیل می شود. دومی آشناییم با یک زن بود. زنی هلندی که به اتفاق دوستانش در حال گشت و گذار در اروپا بود و تصادفاً گزارش به روستای ما افتاده بود. اسمش مارگو بود. از من هشت سال بزرگتر بود. خیلی زیبا، قد بلند، جذاب و مستقل بود. قلندر، ایدئالیست، رادیکال، روشنفکر دو جنسی چپگراه آزادیخواه طرفدار محیط زیست آنارشیست طرفدار چند فرهنگی مدافع حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها، اکوفمینیست معنای بیشتر اصطلاحاتی را که در مورد مرگو صدق میکرد نمیدانستم اما یک چیز را میدانستم. به پاندل می ماند: میدیدی شاد و، سرحال و سرشار از زندگی، دنبال این ایده و آن پروژه می دود. بعد یک دفعه میدیدی شانههایش آویزان و چشمهایش بیفروخت شده. از پیش نمیشد فهمید وضعیت روحیش چطور است؟ از اول با سبک رایج زندگی که بهش میگفت دروئی رفاه بورژوایی دشمن بود هر چیزی را تا کوچکترین جزئیاتش می کاوید و نقد میکرد خودش معماست که چطور من که آدمی آرام و ساکت بودم با دیدن زنی دیوانه مثل مارگو فرار را برقرار ترجیح ندادم برعکس خودم را در گرداب شخصیت سرزنده مرگو رها کردم. بیان که به اواقبش فکر کنم. عاشق شده بودم. سرشت غریبی داشت مرگو. سرشار از افکار انقلابی و خلاق و انتقادات تندتیز بود. جسور، مستقل و آسیب. بود. اما در عین حال مثل گلی بلوری شکننده بود. یک دفعه می دیدی، از کوچکترین حرف می و دلش می شکند. به خودم قول دادم که از او در برابر ناملایمات دنیای بیرون و سرسختی و سماجت ویرانگر درون خودش محافظت کنم. همانقدر که دوستش داشتم، او هم دوستم داشت. گمان نمی کنم الا. گمان هم نمی کنم که به من وفادار مانده بود. اما میدانم که او هم مرا خیلی دوست داشت. به اندازه‌ای که پیش از آن کسی را آن اندازه دوست نداشته بود. به قدری که حتی مایه حیرت خودش می شد. تا آنجا که در توانش بود تا آنجا که می توانست. این شد که دنبال مارگو راه افتادم و به آمستردام رفتم در آنجا ازدواج کردیم مارگو در این شهر کمی آرام گرفت خودش را وقف کمک به کسانی کرد که به دلایل سیاسی یا اقتصادی به اروپا پناهنده شده بودند در یکی از سازمانهای های جامعه مدنی کار میکرد که به رفع های پناهندهها می پرداخت. راهنمای خانوادههایی شده بود که از مصیبت جاهای دنیا آمده و به هلند پناهنده شده بودند. فرشته نگهبانشان بود، چنان شد که خیلی از خانواده های اندونزیایی، سومالیایی، آرژانتینی و فلسطینی اسم او را روی دخترشان گذاشتند. منم ما آنقدر مشغول و فکر کنم مادی بودم که نمیتوانستم به این جور موضوعهای آرمانگرایانه بپردازم. مرد جوانی را در نظر بگیر که در رشته مدیریت فارغ تحصیل شده و هر و جوش ارتقای شغلی را خورد. در شرکتی بین المللی مشغول کار شدم. مرگو نه به پست و مقامم کاری داشت نه به حقوقم توجه میکرد. منم ما روز به روز بیشتر به پول و پست و مقام اهمیت میدادم. میخواستم قوی باشم، قوی و پولدار. کل زندگیمان را جز به جزء برنامه ریزی کرده بودم. قرار بود در عرض دو سال بچه دار شدیم. در تابلوی خانواده خوشبخت که توی ذهنم داشتم، دو تا دختر بچه هم بود. مطمئن بودم آیندهی روشن در انتظارمان است. هرچه باشد، در یکی از امن ترین جاهای دنیا زندگی می کردیم، نه در یکی از آن کشورهای بلبشو که مدام مثل شیری که خراب شده و چکه می کند، پناهنده به اروپا سرازیر می کند. جوان بودیم، چهار ستون بدنمان سالم بود. احتمال نمیدادم دادم کاری درست پیش نرود، الان که دارم این سطرها را می نویسم، باور کردنش سخت است. دیگر پنجاه و چهار ساله شده مارگو مرگو هم دیگر زنده نیست. حالانکه که او سالم تر و بیچون و چرا قلب تر از من بود. حق او بود که زندگی کند، نه من. فقط قضاهای سالم می خود. مرتب ورزش می کرد، سیگار نمی کشید، هیچ جور اعتیادی نداشت، خیلی سرحال بود. با آنکه از من بزرگتر بود، جوانتر از من به نظر می رسید. مرگش خیلی غیرمنتظره بود. شبی برای دیدن یکی از روزنامه نگاران روس می رود، که تقاضای پناهندگی کرده بودند موقع برگشتن ماشینش وسط اتوبان خراب می شود و مرگو که همیشه قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می کرد و به من هم در این زمینه هشدار می داد، معلوم نیست چرا به جای فلشر ماشین را روشن کند و همانجا منتظر بماند از ماشین بیرون میآید و پیاده به طرف روستایی در آن ها به راه می‌افتند. بارانی قهوه‌ای رنگ به تن و شلواری تیره به پا داشته، طوری که انگار بخواهد با تاریکی یکی شود. صد متر جلوتر ماشینی با سرعت زیاد به او میزند کاروانی با پلاک یوگوسلاوی راننده اصلا ندیده بودش از دست دادن زنی که دوستش داشتم بدجوری دگرگونم کرده بود دیگر نه آن نوجوان صاف و سادهی روستایی بودم نه مدیری که در پی ارتقای مقام است حیوانی که درونم به قلو زنجیر کشیده شده بود، آزاد شد. به سرعت عوض شدم، زشت شدم، کسیف شدم، چرکاب شدم و سرانجام به ته رسیدم. اوایل دهه هفتاد بود. به این مرحله زندگیم میگویم گویم دورهی که آن با حرف ساد کلمه صوفی آشنا شدم. این طوریست الا امیدوارم حسلت سر نرفته باشد کمی طولانی شد نامم قربانت عزیز